سلک آیات الكتاب و قرآن مبین الف، لام، را. این آیات کتاب و قرآن روشنگر است ربما یودد الذین کفروا لو كانوا مسلمین چه بسا کسانی که کافر شدند دوست دارند و آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند لوهم قل وتمایلهیم عمل بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوهای دراز سرگرن و قافلشان سازد پس به زودی خواهند دانست. و ما اهلکنا من قریت الا و لها کتاب معلوم و ما اهل هیچ دیار و شهری را حلاک نکردیم مگر این که و عجلی معین داشت ما تسبق من امت اجلها و ما يستأخرون هیچ امتی بر عجل خود پیشی نمیگیرد و از آن عقب نخواهد افتاد و قالوا یا ایها الذین نزل علیه الذكر انک لمجنون کافران گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است بی تردید تو دیوانه ای لو ما تأتینا بالملائکت این کنت من الصادقین اگر از راست گویانی چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری ما ننزل الملائکت الا بالحق وما كانوا کانو اذا ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم و هرگاه نازل شوند، آنگاه به آنها مهلت داده نمی شود. همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعا ما نگهبان آن هستیم. ولقد ارسال نا من قبل کفی شیع الاولین و یقینا ما پیش از تو پیام برانی در میان گروهها و امتهاي نخستین فرستادیم. و ما یتیم من رسول ایلا کانو هیچ پیام به سوی آنها نمی آمد. اگر آنکه مسخراش می کردندند کللیکنلوکوفی <تصفيق> قلوب مجریمیم این چونین آن تغیب و استحزار را در دلهای مجرمان راه میدهیم لا یؤمنون به وقد خت سنت اوولی آنها به آن قرآن ایمان نمی آورند. و به راستی سنت و روش پیشینیان نیست چون این گذشته است و لو فتحنا عليهم بابا من السماء فيه و اگر دری از آسمان بروی آنها به گشائیم که پیوسته در آن بالا رو لقالو این باز هم میگویند یقینا ما را چشم بندی کرده اند بلکه ما گروهی سهر شده ایم و جعلنا في السماء بروجا و دینناها للناظرین و به ما در آسمان برجهایی قرار دادیم و آنها را برای بینندگان آراستیم و حفظناها من کلی شیطان رجیم و آن را از هر شیطان رانده ای حفظ کردیم الا من سرق السمع فاتبعه شهاب مبین مگر آن کسی که دزدانه گوش فرا دهد پس در آن صورت شهابی آشکار دنبالش کند و مددناها و القینا فیها رواتی و انبتنا, انبتنا فیها من كل شیئی موزون و زمین را گستردیم و در آن کوهای و استواری افکندیم و از هر چیز سنجیده در آن رویاندیم و جعل ما لکم فیها معايش و ملستم له برادقین. و برای شما انواع وسایل زندگی و همچنین برای کسانی که روزی دهندگی آنها نیستی در آن قرار دادیم. و این من این شیئن الا عندنا خزائنه و ما الا بقدر و هیچ چیز نیست مگر آنکه که نزد هایش ماست و ما جز به اندازهای معین آن را نازل نمی کنیم. و ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فأسقینا کموه و ما انتم لهو بخادنین و ما بادها را بارور عبرها و گیاهان پس از آسمانها آبی نازل کردیم و با آن آب شما را سیراب ساختیم در حالی که شما خازن آن نیستید. و اینا نحن نحی و نمیت و نحن و یقینا ما این که زنده می کنیم و می میرانیم و ما وارث هستیم. و لقد علمن المستقدمین منکم و, و حال گذشتگان شما را دانست و حال آیندگان را هم به خوبی دانست وَإِنَّ و این ربک هو یحشرهم اینه حکیم علیم و ای پیامبر، بیگمان پروردگار تو همه آنها را در قیامت محشور می کند، همانا او حکیم داناست. ولقد لقد خلقن الانسان من صلصال من حمع مثلون و ما انسان را از گل خشکیده ای که از گل بویناک تیره ای بود آفریدیم. والجَانَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ السَّمُومِ فَجَنَّ رَا پيش از آن از آتش سوزان آفریديم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا من من و به یاد آور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود، همان آمن آفریننده بشری از گل خشکیده ای که از گل بوینا که تیر ای گرفته شده هستم، فَإِذَا تَرَيْتَهُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِمُ الرُّوحَ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پس چون او را آفریدم و به او سامان دادم و از روح خود در آن دمیدم همگی برای او سجده کنید فسجد الملائکه كلهم اجمعون پس همه فرشتگان با هم دیگر سجده کردند الا ابلیس ابا مع الساجدین جز ابلیس که سرپیچی کرد از آنکه با سجده کنندگان باشد قال یا ابلیس تكون خداوند فرمود ای ابلیس تو را چه شده که با سجد کنندگان همراه نیستی؟ قال لم اکلی افجد لبشر خلقته من طلصال من حمئی مثنون گفت من هرگز برای بشری که او را از گله خشکیده ای که از گل بوینا که تیر ای آفریده ای سجده نخواهم کرد منها فإنك رجیم. خداوند فرمود از آن بهشت بیرون شو بیگمان تو رنده شده ای و این علیک اللعنت الى يوم الدین و همانا تا روز قیامت بر تو لعنت خواهد بود قال رب الى يوم يبعثون ابلیس گفت پروردگارا مرا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند مهلده قال فانك من خداوند فرمود یقینا تو از مهلت یافتگانی اله یوم الوقت المعین تا روز وقت مقرر و معین شده قال رب بما اویتنی لأزینن لهم في الأرض ولأغوینهم اجمعین گفت پروردگارا به سبب اینکه مرا گمراه ساختی قطعا من گناه و ها در زمین در نظرشان زینت میدهم و همگی آنها را گمراه خواهم کرد منهم مگر بندگان مخلص تو را از میان آنها قال هذا صراط علی مستقیم خداوند فرمود این راه مستقیم است که به من میرسد این عبادی لیس لك علیهم سلطان الا من اتبعک من یقینا تو را بر بندگانم تسلطی نیست مگر بر آن گمراهانی که از تو پیروی میکنند وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِغَمٍّ جَهَنَّمُ مِيَادِقَاهُ لِبَرَايِ برای أَنْهَاسْت لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْصُورٌ بَرَايِ آن هفتر هست برای هر دری گروهی از آنها تقسیم و معین شده اند این و عیون. یقینا پرهیزگاران در باغهای بهشت و در کنار چشمه ها هستند بسلام آمین. به آنها گفته می شود به سلامت و ایمنی به آن باغ ها وارد شوید. و نزعنا ما في من غل على آنچه در سینه‌هایشان از غل آنچه در دل‌هایشان از کینه و حسد بود بیرون کشیدیم. برادران بر تخت ها رو به روی یکدیگر قرار دارند. لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ در آنجا هیچ خستگی و رنجی به آنها نمیرسد و هیچگاه از آنجا بیرونشان نرانند نَبِ عِبَادِي أَنِّي أَنَ الْغَفُورُ ای پیامبر، بندگانم را خبرده که یقینا من آمور مهربانم و ان عذابی هو العذاب الالیم و آنکه عذاب من همان عذاب دردناک است و نبکهم عن ضیف ابراهیم و آنها را از مهمانان ابراهیم خبرده از دخلوا عليه فقالوا سلاما قال اینا منكم وجلون چون بر او وارد شدند و سلام گفتند ابراهیم گفت همانا ما از شما می قالوا لا توجل اما نبشرك بغلام علیم گفتند نترس بیگمان ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم قال أبشرتموني على علا السني الكبر فبما تبشرون. ابراهیم گفت آیا به من این بشارت می دهید با این که پیری به من رسیده است پس به چه چیز بشارت می دهید قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين گفتند تو را به حق بشارت دادیم پس از ناامیدان نباش قال ومن ييقن من, من رحمه ربه إلا الله ابراهیم گفت و چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید می شود قال فما خطبكم المرسلون آنگاه گفت پس ای فرستادگان خدا مقصود شما چیست ارسلنا گفتند همانا ما به سوی قوم گناهکار فرستاده ایم تا آنها را هلاک کنیم الا آل لوط جز خاندان لود که ما حتما همه آنها را نجات خواهیم داد إلا رَأَتَهُ قَدْ دَرْنَا انها لَمِنَ مگر همسر او که ما قدر داشتیم او قطعا از بازماندگان باشد فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطِنِ الْمُرْسَلُونَ پس هنگامی که فرستادگان خدا نزد خاندان لوت آمدند قال اینکم قوم منکرون لوت گفت همانا شما گروهی ناشناس هستید قالوا بل جئناك بما كانوا کانو فیهیم فرشتگان گفتند بلکه ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها در آن تردید داشتند و, و, انا و ما حق را برای تو آورده ایم و ما قطعا راست گویانیم فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِفِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ پس پاسی از شب گذشته خانواد ادبا خود بردار ببر و خودت به دنبال آنها برو و کسی از شما پشت سرش ننگرد و به آنجایی که فرمان یافتید بروید وقضاینا الیه ذالک الامر ان دابرها اولئک قطهم مصبحین و ما این امر را به او وحی کردیم که همان آن صبحگاهان همه آنها ریشکن خواهند شد و جاء اهل المدینه و اهل شهر شادی کنان به طرف خانه لوج آمدند قال إن هؤلاء اولائی فلا تظبحون لوت گفت به راستی اینها مهمانان من هستند پس مرا رسوا نکنید و واتقو الله ولا تخزون و از خدا بترسید و مرا خار نسازید قالو ولم ننهك عن العالمین آنها گفتند مگر ما تو را از مهمانی و حمایت مردمان نه نکرده بودیم قال ها بناتی این كنتم لود گفت اینها دختران من هستند با آنها ازدواج کنید اگر انجام دهنده کاری هستید لعمو که انهم لفی سكرتهم یعنمون تو گند به جان تو ای پیام بر که آنها در مستی خود سرگردانند فاخذتهم الصيحه مشرفین پس هنگام طلوع آفتاب سیه آنها را فرو گرفت وجعلنا عاليهها سافلها وامطرنا عليهم حجارا و امطرنا علیم من سجیل آنگاه بالای آن آبادی ها را پایین قرار دادیم و زیرو رو کردیم و بر سر آنان سنگهایی از سنگ گلبارانیدیم این مفی ذلک لآیات للمتوسمین بیگمان در این سرگذشت هایی برای هوشیاران است و همانا و آن شهرهای ویرانه بر سر راه کاروانیان پابرجاست برجا فی بیگمان در این نشانه ای برای مؤمنان است و اینکان أصحاب الأيکت الظالمین، کبیشک کار بودند. فانتقام منهم و انهما لبی امام مبین از ما از آنها انتقام گرفتیم و شعرهای ویران شده این دقام بر سر راه آشکار است و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلين و به راستی اصحاب حجر پیام بران را تگذیب کردند و آتیناهم آیاتنا فکانو عنها معرضین و ما آیات خود را به آنها دادیم، پس آنها از آنان روی گردان بودند و من الجبال آنها با خاطری مطمئن و آسوده از کوها خانههایی میتراشیدند می تراشیدند پس صبح گاهان سیه آنها را فرو گرفت فما عنهم ما كانوا و آنچه را به دست آورده بودند عذاب الهی را از آنها دفع نکرد و ما خلقن السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و این ساعت لآتیت صفح الصفح الجمیل و ما آسمانها و زمین و را که میان آن دوست جز به حق نیا فریدیم و قیامت قطعا خواهد آمد پس ای پیامبر به طرز شایسته ای گذاشت کن اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ العليم. بی گمان پروردگار تو همان آفریننده داناست ولقد آتَيْنَا كَسَبْعًا من الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ العظیم. و براستی ما به تو سب المسانی و قرآن عظیم دادیم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين از هرگز چشم خود را به سوی آنچه از نعمتها و متاع دنیوی که گروههایی از آنان را از آن بهرهمند من ساخته ندوز و بر آنها غمگیم نباش و بال خود را برای مؤمنان فرودار. دار و قل و بگو همانا من هشدار دهنده آشکارم کما انزلنا علی المقتسمین و آنها را از عذابی بترسان، همان گونه که بر تقسیم کنندگان نازل کردیم الذين جعلوا القران عضين همان کسانی که قرآن را تقسیم کرده بودند فورا بك لنسالنهم اجمعين پس او به پروردگارت اط ان در قیامت از همه آنها سوال خواهیم کرد هم مکنو عملون از آنچه میکردند خ دبیمت دقم رو و هری معل پس ای پیامبر، به آنچه مأمور شده ای آشکارا را ابلاغ کن و از مشککان روی بگردان بیگمان ما مسخره کنندگان را از تو دف خواهیم کرد الذي جوون معلههناخم کسانی که معبود دیگری با خدا قرار میدهند پس به زودی خواهند دانست. و نعلم انک یضیق صدرك بما یقولون و به راستی ما میدانیم که سینه تو ای پیامبر از آنچه آنها میگویند تنگ می شود فسبح بحمد ربک و من الساجدين. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجد کنندگان باش و ربك ربک حتی یکل یقین و پروردگارت را عبادت کن تا هنگامی که یقین به سراغت آید بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان اتا ف عما فرمان خدا فرا رسیده است پس برای آن شتاب نکنید او پاک و برتر است از آنچه شریک او قرار میدهند. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء, على من, يشاء من عباده أن أنذرون خداوند فرشتگان را با روخ به فرمان خیش بر هرکس از بندگانش بخواهد نازل می کند با این پیام که مردم را هشدار دهید و بگویید معبودی به حق جز من نیست پس از من بترسید خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون آسمانها و زمین را به حق آفرید از آنچه که شریکش میسازند برتر است خلق الانسان من نطفت فإله و خصیم انسان را از نطفه آفرید، آنگاه او ستیز جویی آشکار شده است. و خلقها لکم فیها دفق و منافع و منها تأكلون. و چهار پایان را برای شما آفرید که در آنها پوشش و منافع است و از گوشت برخی از آنها میخورید. و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. و در آنها برای شما زینت و زیبا است، چون شام گاهان از صحرا باز میگردانید و چون صبح گاهان میفرستید. و تحملو اثقالکم الى بلد لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس این ل لرؤوف رحیم و آنها بارهای سنگین شما را به شهری که جز بارنج و مشقت زیاد به آن نمیرسیدید رسیدید حملی میکنند. بیگمان پروردگارتان رؤوف و مهربان است او الخیل و البغال و الحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون و همچنین اسبان و استران و خران را آفرید تا بر آنها سوار شوید و نیز برای شما زینت است و چیزهایی را می‌آفریند که نمیدانید وَعَلَى اللَّهِ تَصْدُّ السَّبِيلَ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ و بر خداست که راه راست را به بندگانش نمایاند و برخی از آن راهها حابی راه و کج است و اگر می‌خواست همه شما را هدایت می‌کرد او الزی انزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فیه تسيم او کسی است که از آسمان برایتان آبی نازل کرد که از آن آب آشامیدنیست و از آن گیاهان و درختانی میروید که حیوانات خود را در آن میچرانید یونبیت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والأعناب و من الثمرات ان فِي ذَلِكَ لَعَيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ خداوند با آن آب برای شما زراعت و زیتون و درختان خرما و تاکستان های انگور و از همه نوع میوه ها میرویاند بیگمان در این نشانه است برای گروهی که انبیشه میکنند و وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما مسخر کرد و ستارگان نیز به فرمان او مسخر هستند بی تردید در این نشانی ای است برای گروهی که خرد میبرزند و ما در الکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون و همچون این مسخر گرداند آنچه را که برای شما در زمین به های گوناگون آفرید، مسلما در این نشانه است برای گروهی که پند میپذیرند. و هو ذی سخفر البحر لتأكلو منه لحمة طریق و منه حلیة وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون و او كسیاست كه دریا مسخر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زینتی که آن را به پوشید بیرون آرید و کشتی ها را میبینی که در آن روانند و تا از فضل اروزی بجوئید و باشد که شکر گذارید و القا في الارض رواتي ان تميد بكم و انهارا و سبل لعلكم ته و در زمین کوههای استوار و محکمی افکند که مبادا شما را بلرزاند و نرها و راهها پدید آورد شاید هدایت شوید و علامات و, و نیز نشان قرار داد و در هنگام شب به وسیله ستارگان راه می یابند افمن یخلق یخلق افلا آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند آیا پند نمی گیرید و این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم و اگر بخواهید نعمت خدا را بشمارید نمیتوانید آن را بشمارید بی تردید خداوند آمرزنده مهربان است والله یعلم ما تسرون وما تعلنون و خداوند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌کنید می‌داند ولذین یَدعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا یَخْلُقُونَ و, و آنهایی را که به جای الله می‌خوانند چیزی را نمی‌آفرینند و خودشان آفریده می‌شوند اموات غیر أحیاء وما یشعرون أیان یبعثون آنها مردگانی هستند غیر زنده و نمیدانند در چه زمانی برانگیخته میشوند لهكم له واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم انكرت وهم مستكبرون معبود شما معبودی یگانه است پس کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند دلهایشان حق را انکار کند و خودشان مستکبرند لا جام أن الله يعلمم ما يوسون و ماون ان مو لا يحّ مستک برین قط آنچه را پنهان میدارند و آنچه را آشکار میکنند میدانند بیگومان او مستک را دوست ندارد و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اتاقیر الاولین و چون به آنها گفته شود پروردگارتان چه چی چیز نازل کرده است گویند افثانه های پیشینیان <متش> <تصفيق> ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ما يذرون <تصفيق> تا در روز قیامت بار گناهان خود را به طور کامل بردوش دوش و نیز بخشی از گناهان کسانی را که به نادانی گمراهشان می سازند، آگاه باشید چه بده است آنچه بردوش می کشند. قد مکر الذین من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ به راستی کسانی که پیش از ایشان بودند نیز مکر ورزیدند پس خداوند بنیادشان را از اساس و پای ویران کرد که سقف از بالا بر سرشان فرو ریخت و عذاب الهی از آنجایی که نمیدانستند به سراغشان آمد ثم یوم القیامت يخزيهم و یقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون قال الذين اوتوا العلم ان الخزي الوم والسوء على الكافرين <تصفيق> آنگاه روز قیامت خداوند آنها را رسوا میسازد میفرماید آن شریکان دروغین من آن کسانی که شما در باری آنها با آن دشمنی میکردید کجا هستند کسانی که به آنها علم داده شده گویند همانا رسوایی و سختی امروز بر کافران است الذین توفاهم الملائکه تظلم انفسهم فالقر السلام ما كنا نعمل من سوء ان الله علیم بما کنتم تعملون همان کسانی که فرشتگان عذاب جانشان را می‌گیرند در حالی که به خود ستم کرده بودند پس سر تسلیم فرود می‌آورند و گویند ما هیچ کار بدی انجام نمی‌دادیم آری مسلما خداوند به آن چه انجام میدادید داناست و ابواب جهنم منخالبین فيها فلبیث مثول پس از درهای جهنم داخل شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود چه بد است جایگاه مستکبران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 و به کسانی که پرهیزگاری نمودند، گفته شد، پروردگارتان چه چیز نازل کرده است؟ گویند، خیر، برای کسانی که نیکی کردند، در این دنیا کیست و قطعا سرای آخرت وسی بهتر است و چه خوب است سرای پرهیزگاران؟ جنت عدنی دخلونها تجری من تحتها الانهاق لهم فيها ما یشاؤم كذلك یجزی الله المتقیم جاویدان است که به نرها از زیر درختان است در آنجا هرچه بخواهند برایشان محیست این گونه خداوند پرهیزگاران را پاداش میدهد الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سلام عَلَيْكُمُ دُخُلُ الْجَنَّةَ بما كُنْتُمْ تعملون امان کسانی که فرشتگان رحمت جانشان را میگیرند در حالی که پاکند به آنها میگویند سلام بر شما به خاطر آنچه که میکردید به بهشت وارد شوید هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلهم و ما ظلمهم الله ولیکن کانو انفتهم یظلمون آیا کافران جز این انتظار دارند که فرشتگان برای گرفتن جانشان به سراغ آنها بیایند یا فرمان پرورگارت برای عذابشان فرارسد کسانی که پیش از آنها بودند نیز چنین کردند و خداوند به آنها ستم نکرد لیکن آنها به خویشن ستم میکردند ف سیئات ما مام و بهم ما كانوا به پس بدی های آنچه را که میکردند به آنها رسید. وان آنچه به آن, آن مسخره کردند بر آنان فرود آمد و قال الذين اشركوا الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا من فهل و کسانی که شرک وزییدند گفتند اگر خدا میخوااست نما و نپدرانمان غیر از اوهی چیزی را پرستش نمیکردیم و نه چیزی را بدون فرمان او حرام می کسانی که پیش از آنها بودند نیز چنین کرده پس آیا بر پیام بران جز ابلاغ آشکار مسئولیت دیگری هست ولقد بعثنا فی كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حطط یقینا ما در میان هر امتی پیامبری را فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید و از تاغود اجتناب کنید پس خداوند بعضی از آنان را هدایت کرد و بر بعضی از آنان گمراهی محقق گشت پس در زمین بگردید آنگاه بنگرید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود این تحرص علی هداهم فإن الله لا يهدی من يضل و ما لهم من ناصرین ای پیامبر هر اندازه بر هدایت آنها حریص باشی سودی ندارد زیرا که خداوند کسی را که گمراه کرده است هدایت نمی کند و آنها یاورانی ندارند و اقتمو بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه و, أكثر الناس لا و آنها با شدید ترین ساگند هایشان به خداوند ساگند یاد کردند که خداوند کسی را که می میرد بر نمی انگیزد. آری این بعده قطعی بر اوست که همه مردگان را بر می ولی بیشتر مردم نمی‌دانند <تصفيق> لیبین له الملذ یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم كانوا کاذبین <تصفيق> تا آنچه را که در آن اختلاف می‌کردند برایشان روشن سازد و تا کسانی که کافر شدند بدانند که آنها دروغگو بوده‌اند انما اردناه ان نقول فرمان ما به هر چیز که چون اراده اش کنیم فقط این است که به او گوییم موجود باش پس بلافاصله موجود می شود وَالَّذِينَ هاجروا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظلموا لنبوئنهم فِي الدُّنْيَا حَسَنَهُ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ و کسانی که پس از آن ستم دیدند در راه خدا هجرت کردند یقینا در این دنیا جایگاه خوبی خواهیم داد و مسلما پاداش آخرت بزرگتر است ای کاش می‌دانستند همان کسانی که صبر کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می‌کنند و ما ارسلنا من قبل که إلا رجالا نوحی إليهم فاسألو اهل الذكر این کنتم لا تعلمون و پیش از تو ای پیامبر توزمردانی که به آنها وهمی کردیم نفرستادیم پس ای مردم اگر نمیدانید از اهل کتاب بپرسید بالبینات والجبر وانذنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفکرون که آنها را با دلایل روشن و کتاب فرستادیم و ما این قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که به سوی آنها نازل شده است و باشد که آنها بیندیشند افأمین الذین مکر السیئات این یخسی فالله به هم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا يشعون آیا کسانی که بدن دیشی کردند از این ایمن هستند که خدا همه آنها را در زمین فرو برد و یا عذاب الهی از جایی که نمیدانند به سراغشان بیاید؟ او یأخدهم فی تقلبهم فما هم بی یا آن که به هنگام رفت و آمدشان گریبان آنها را بگیرد پس نتوانند که ما را ناتوان کنند و بگریزند او یاخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحیم <تصفيق> یا آنکه آنان را در حال ترس و وحشت بگیرد پس بی تردید پروردگار شما رئوف و مهربان است أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمین والشمائل سجدا لله وهمداخرون آیا آنها به چیزهایی كه خداوند آفریده است نمینگرند که چگونه سایههایش از راست و چپ سجده برای خداوند در حرکتند و آنها آجز و فروتن هستند و لله ما فی السماوات و ما فی من دار. و, و, لا يستكبرون و آن آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین از جنبندگان وجود دارد و نیز فرشتگان برای خدا سجده می کنند و آنان تکبر نمی يخافون ربهم من فوقهم ما آنها از پرورد گارشان که بر فرازشان است میترسند و آنچه فرمان مییابند انجام دهند. وقال الله لا الهين انما هو واحد فأيا و خداوند فرمود دو معبود را نگیرید فقط او معبود یگانه است پس تنها از من بترسید و له ما فی السماوات و الارض الدین واصبه افغیر الله تتقون و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و نیز دین و پرستش ابدی از آن اوست آیا از غیر خدا میترسید؟ ترسید؟ و ما نعمت الله ثم اذا الضر آنچه از نعمت دارید پس همه از جانب خداونده است سپس هنگامی که ناراحتی به شما رسد باز به سوی اوزاری زاری دمم ایذا کشاب بر کو ایذا فری ق کو ببیوش سپس هنگامی که آن ناحی را از شما برطرف ساخت آنگاه گروهی از شما به پروردگارشان شرک میآورند. <تصفيق> بما آتيناهم فسوف تعلمون. <تصفيق> تا آنچه را که به آنها دادیم ایم کفران کنند پس چند روزی بهره گیرید که به زودی خواهید دانست و یجعلون لما لا يعلمون نصیبا من و آنها برای چیزی که نمیدانند سحمی از آنچه روزیشان داده ایم قرار میدهند به خدا سوگند البته از آنچه افترامی بندید بازخواست خواهید شد. ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما یشتهون و آنها برای خدا دختران قرار میدهند او منزه است و برای خودشان آنچه را میل دارند و اذا بشر بشیر احدهم بلعون سا ظل وجهه مسودا و هو هرگاه به یکی از آنها به تولد دختر بشارت دهند چهره اش سیاه می شود در حالی که او خشم خود را فرو میخورد خورد یتوارا من, القوم من امام الشربه ایونسکو ام یدسهو فی التراب الاسا اما یحکمون و به سبب بشارت بدی که به او داده شده از قوم خود پنهان می شود و می اندیشد که آیا با خاری او را نگه دارد یا در خاک پنهانش کند آگاه باشید، آنچه را که حکم می کنند، بد است. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وَلِلَّهِ المثل و وهو العزیز الْحَكِيمِ برای کسانی که به سرای آخرت ایمان ندارند، مثل و صفت بد است، و برای خداوند صفت برتر است، و هو بيروز و حکیم است و الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن اخرهم الى اجل مسمى فَإِذَا فا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ و اگر خدا بند مردم را به خاطر ستمشان معاخزه میکرد هیچ جنبنده ای بر روی آن باقی نمیگذارد ولیکن آنها را تا زمان معین مهلت می دهد، پس هنگامی که اجلشان فرارسد نساعتی تأخیر میکنند و نه پیشی میگیرند ویجعلون لله ما یكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون و آنها برای خدا چیزهایی قرار میدهند که خودشان از آن کراحت دارند و زبانهایشان سخن دروغ بیان می کند تینیکی ها از آن ایشان است بی تردید برای آنان آتش جهنم است و قطعاً آنها از پیشگامان جهنم هستند تالله لقد ارسلنا الى امم من, من قبلی که فزین لهم الشیطان اعمالهم فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم ای پیامبر به خدا سوگند که به سوی امتهای پیش است و پیامبرانی فرستادیم پس شیطان اعمالشان را برای آنها بیاراست لذا امروز او دوست و یاورشان است و عذاب دردناکی برای آنهاست او اما انزلنا علیک الكتاب الا لتبین لهم الذی اختلفو فیه وهدا و رحمہ و هدن و رحمت لقوم یؤمنون و ای پیامبر ما کتاب قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را که در آن اختلاف کردند برای آنها روشن سازی و نیز مایه هدایت و رحمت برای گروهی که ایمان می آورند باشد والله مِنَ من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وخداوند از آسمان آبی فرو فرستاد پس پا آن زمین را بعد از مردنش زنده گرداند، بیگمان در این نشانه است برای گروهی که میشنوند. و این لکم فی الأنعام لعبره نسقی کم فی بطونه من بین فرخ و دم لبن خالصا لبنم و همانا در وجود چهار پایان برای شما عبرتی است از آنچه در شکم آنها از میان سرگین و خون شیر خالص که برای نوشندگان گواراست به شما می نوشانیم و من ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا إن نفی ذلك لآیتا لقوم یعقلون و نیز از میبه های درختان خرما و انگور مسکرات ناپاک و روزی خوب و پاکیزه میگیرید بی گمان در این نشان ایست برای گروهی که خرد میورزند ورزند و اوحا ربک ایلن نحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما يعرشون. و پروردگار تو به زنبور اصل الهام کرد که از کوها و درختان و داربستهایی که مردم می سازند خانه هایی برگزین دم کلی من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء لنا آنگاه انگاه از شیره تمام میوه ها و گل ها بخور سپس راه های هموار پروردگارت را به پیما از شکم آنها نوشیدنی ای با رنگ های گوناگون بیرون میآید که در آن شفا برای مردم است بیشک در این نشانه است برای گروهی که می اندیشند. و والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا این الله علیم قدیر و خداوند شما را آفرید سپس می, می و بعضی از شما به پیری و فرتوتی می‌رساند تا بعد از علم و آگاهی چیزی نداند و همه را فراموش کند بیگمان خداوند دانای تواناست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 و خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر در روزی برتری داده است، پس کسانی که برتری داده شده اند حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند تا همیگی در آن برابر شوند، آیا آنها نعمت خدا را انکار می کنند؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وجعل لكم من ازواجكم من الطيبات و خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگان پدید آورد و از پاکیزه ها به شما روزی داد آیا به باطل ایمان می آورند؟ و من خدا آنها کفر می و من دون الله ما لا يملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا يستطيعون و آنها غیر از خدا چیزی را می پرستند که هیچ روزی را برای آنها از آسمانها و زمین در اختیار ندارند و هرگز نمی توانند فلا لله الامثال الله يعلم و انتم لا تعلمون پس برای خدا مثلها مزنید یقینا خداوند میداند و شما نمیدانید بارا الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و من رزقناه من نار رزقا حسنا و من رزقناه مننا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و هل یستمون الحمد لله بل لا يعلمون برده مملوکی را که بر هیچ چیز توانا نیست و کسی را که از جانب خود روزی نیکو بخشیده این پس او پنهان و آشکار از آن روزی انفاق میکند آیا این دو نفر برابرند ستایش مخصوص خداست بلکه بیشترشان نمی دانند وَمَرَ بَاللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يوجهه لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو على صراط مستقیم و خداوند مسئل دیگری زده است دو مرد را که یکی از آن دو گنگ است و بر هیچ چیزی توانانی است سربار صاحب و مولای خود است هر کجا او را بفرستد هیچ خیری را نمی آورد آیا او و کسی که به عدل فرمان می دهد و خود بر راه مستقیم قرار دارد برابر است وللله غیب السماوات والأرض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله علی كل شء قدیر علم غیب آسمانها و زمین از آن خداست و امر قیامت مانند چشم بر هم زدن و یا از آن هم نزدیکتر است بیگمان خداوند بر همه چیز تواناست والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم, لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون فخداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ چیز نمیدانستید و برای شما گوش و دیدگان و دلها پدید آورد شاید سپاس گذارید الم یرو الى الطیر مسخرات فی جوی سمائی ما یمسکهن الا الله اِنَّ فِی ذَلِكَ لآيات لقوم آیا آنها به پرندگانی که در جو آسمان مسخر فرمان خدا هستند نمی نگرند؟ در این امر نشانه است برای گروهی که ایمان می آورند. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم و من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا, اثاثا و خداوند الى حين خدا برای شما از خانه هایتان جای آرامش قرار داد و از پوست چهار پایان نیز برای شما خانه هایی قرار داد که آن را در روز کوچ کردنتان و روز اقامتتان سبک میابید و از پشمهایش و کرکهایش و موهایش اساسی و متاع تا مدت معینی قرار داد والله جعل لكم من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 کذالک یتم نعمته علیکم لعلكم تسلمون از آنچه آفریده است سایه هایی برای شما قرار داده و از کوها پناهگاه هایی برای شما قرار داده است و برای شما جامعه هایی قرار داد که شما را از گرما و سرما حفظ می کند. و جامعه هایی که شما را در هنگام جنگ و درگیری مسون می دارد این گونه خداوند نعمتهایش را بر شما تمام می کند باشد که تسلیم فرمان او شوید فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ الْمُبِينَ پس ای پیامبر اگر آنها رو گرداندند این نیست که بر عهده تو ابلاغ آشکار است یعرفون نعمت الله ثم و واكثرهم الكافرون آنها نعمت خدا را میشناسند سپس انکارش میکنند و بیشترشان کافرند و یوم نبعث من كل ام و روزی که از هر امتی گواهی برمیانگیزیم انگیزیم، آنگاه به کسانی که کافر شدند اجازه سخن گفتن داده نمی شود، و نه از آنها تقاضای توبه می شود، و اذا رأ الذین ظلم العذاب فلا يقفف عنهم ولا هم ينبرون. و کسانی که ستم کردند هنگامی که عذاب را ببینند پس نه از عذاب آنها کاسته می شود و نه آنها مهلت می آبند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 و کسانی که شرک برزیدند هنگامی که شریکان خود را ببینند میگویند: پروردگارا اینان شریکان ما هستند کسانی که ما به جای تو می آنگاه معبودانشان به آنها پاسخ میدهند به راستی که شما دروگو هستید و ما و در آن روز همگی در پیشگاه خدا تسلیم شوند و تمام آنچه را افترا می‌بستند از نظر آنان گم و نابود شوند الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بذناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند به کیفر آنکه فساد میکردند عذابی بر عذابشان خواهیم آورد وَيَوْمَ نَبَعْتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا زلنا روزی الكتاب لكل شيء وبشرا و روزی که در میان هر امتی گواهی از خودشان بر آنها برمیانگیزیم و تو را بر آنها گواه آوریم و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است این الله يأمر بالعدل والإحسان و ایتائی بالقربا و عن الفحشاء والمنكر والبغی یعظكم لعلكم تذكرون. به خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند و شما را پند می دهد شاید متذکر شوید. و اوفو بعهد الله اذا عاندتم و لا تنقضو الایمان بعد توکیدنا وقد قد جعلتم الله عليكم کفیلات اِنَّ الله يعلم ما و به عهد و پیمان خدا وفا کنید هرگاه عهد و پیمان بستید و سوگندها را پس از محکم ساختنش نشکنید در حالی که شما خدا را کفیل بر خود قرار دادید یقینا خداوند آنچه را میکنید میداند ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوه ان كفتن تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ كنتم فيه و مانند آن زن نباشید که پشم های تابیده خود را پس از محکم شدن وامیتابد که سوگند های خود را وسیله خیانت و فریب سازید به خاطر این که گروهی از گروه دیگر بیشتر است جز این نیست که خداوند شما را با این وسیله آزمایش می کند. یقینا روز قیامت آنچه را در آن اختلاف می کردید برای شما روشن خواهد کرد و شاء الله لجعلكم لکم امتا واحدتا ولیکن من یشاء و, كنتم تعملون. و اگر خدا میخواست همه شما را یک امت قرار میداد، ولیکن هر کس را بخواهد گمراه میکند و هر کس را بخواهد هدایت می نماید و قطعا از آنچه چه می کردید باز خواست خواهید شد ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا, وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم و سوگندهایتان را وسیله خیانت و فریب در میان خود قرار ندهید که مبادا گامی بعد از اوستواریش متزلزل شود و به خاطر بازداشتن مردم از راه خدا بدیه آن را در دنیا بچشید و در آخرت برای شما عذاب بزرگی خواهد بود ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لكم ان كنتم تعلمون و پیمان خدا را به بهای اندک نفروشید اگر بدانید آنچه نزد خداوند است یقینا برای شما بهتر است ما عندكم فانفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون آنچه نزد شماست فنا می شود و آنچه نزد خداست باقی و قطعا به کسانی که صبر کردند پاداششان را به بهترین اعمالی که انجام میدادند میدهیم. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجره به احسن ما كانوا هر کسی که کار شایستهی انجام دهد خواه مرد باشد یازن در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و مسلماً پاداششان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند به آنها می دهیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس هنگامی که قرآن می‌خوانی از شر شیطان رانده شده به خدا پناه ببر ایننه نیست له سلطان علی الذین آمنو علی ربهم يتوكلوا. بیگمان او بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند. هیچ تسلطی ندارد. اینما سلطانه علی الذین یتولونه هم مشرکون تسلط او تنها بر کسانی است که او را به دوستی خود برگذیده اند. کسانی که به او شرک می و اذا بدلنا آیت مکان آیت و الله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون و هنگامی که آیه ای را به جای آیه دیگری جایگزین کنیم و خداوند به آنچه که نازل می کند داناتر است آنها گویند بیگمان تو زنی بلکه بیشتر آنها نمیدانند دانند قل نزله روح القدس من ربك بالحق بالحقیل الذين آمنوا الذين آمنوا و و للمسلمين. بگو روح القدس را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است تا کسانی که ایمان آورده اند ثابت قدم گرداند و برای مسلمانان هدایت و بشارت باشد ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميون وهذا لسان عربي مبين و بهراستی ما میدانیم كه آنها می همانا بشری این آیات را به او آموزش می دهد در حالی که زبان کسی که اینها به او نسبت می دهند عجمی است و این قرآن به زبان عربی آشکار است اینن الذین <سؤال> لا یؤمنون بآیات الله لا یهدیهم الله ولهم عذاب علیم یقینا کسانی که به آیات خدا ایمان نمی خدا آنها را هدایت نمی کند و برای آنها عذاب دردناکی است اینما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون بی الله اللہ هم الكذبون تنها کسانی دروغ می‌بندند که به آیات خدا ایمان ندارند و ایشانند که دروغگویان واقعی هستند من کفر بالله من بعد ایمان الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم. کسی که بعد از ایمانش به خدا کافر شود، باز خواست می شود. مگر کسی که به زور به کفت شود، در حالی که قلبش به ایمان آرام باشد، لیکن کسی که سینه خود را برای پذیرش کفت بگشاید، پس خشم خدا بر آنهاست و برای آنها عذاب بزرگی است، ذلك بانهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين این به خاطر آن است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و همانها خداوند گروه کافران را هدایت نمیکند. اولئیک الذین طبع الله علی قلوبهم وسمعهم سمعهم و, و هم الغافلون. اینان کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان و گوششان و چشمانشان مهر نهاده است و اینان غافلان هستند لا جرم انهم فی هم الخاسرون بدون شک آنها در آخرت زیانکارانند ثم این ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا سم <سؤال> جاهد و صبر و این من بعدها لغفور رحیم آنگاه پروردگارت و برای کسانی که هجرت کردند بعد از آن که کشیدند سپس در راه خدا جهاد کردند و صبر نمودند بیگمان پروردگارت بعد از این رنج ها آمرزنده مهربان است یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون به آورید روز قیامت آن روزی که هرکس به دفاع از خود به مجادله برمیخیزد و به هر کسی پاداش آنچه کرده است به طور کامل داده می شود و به آنها ستم نخواهد شد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 فكفرت بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَ الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يَصْنَعُونَ و خداوند مسلی زده است قریه ای که ایمن و آسوده بود هموار روزیش به فراوانی از هر جا می رسید پس اهلش به نعمتهای خدا ناسپاسی کردند آنگاه خداوند به کیفر آنچه که انجام می دادند لباس گرسنگی و ترس را بر برانها پوشانید و لقد جاءهم رسول منهم فکذبوه فأخذهم العذاب و هم ظالمون و به راستی پیامبری از خودشان به سوی آنها آمد پس او را تقذیب کردند آنگاه در حالی که ظالم بودند عذاب الهی آنها را فرو گرفت فکلو مما رزقكم الله حلالا طیبا واشكروا نعمت الله این کنتم ایاه تعبدون پس از آنچه که خدا به شما روزی داده است حلال و پاکیزه بخورید و شکر و نعمت خدا را به جای می آورید اگر او را می پرستید اینما حرم علیکم المیت تودم <تصفيق> ولحم الخنزیر وما و لغیر الله به خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذبه نام غیر خدا بر آن برده شده است بر شما حرام کرده است. پس کسی که ناچار شود در حالی که نستم کار باشد، و نه از حد تجاوز کند، پس بیگمان خداوند، آمردنی مهربان است. ولا تقولوا لما تصفوا الثناءكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اللي تفتروا على الله الكذب إن الذین يفترون على الله الكذب لا يفلحون و چیزی را که زبانتان به دروغ توصیف می کند نگویید این حلال است و آن حرام تا بر خدا افترا ببندید یقینا کسانی که بر خدا افترا میبندند رستگار نمی شوند متاع قلیل و لهم عذاب در این دنیا بهره اندک نصیبشان در این دنیا بهره اندک می شود. و برای آنها در آخرت عذاب دردناک است وعللذین هدوا حرمنا ما قطفنا علیك من قبل و ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم و بر کسانی که یهودی شدند حرام کرده بودیم چیزهایی را که پیش از این بر تو حکایت کردیم و ما به آنها ستم نکردیم ولیکن آنها به خودشان ستم کرده اند ثم <تصفيق> ان ربك للذین عملوا السوء ثم تابوا ثم تابو من بعد ذلك و اصلحو ربك من بعدها لغفور رحیم. سپس پرورد تو برای کسانی که از روی جهالت بدی کردند آنگاه بعد از آن توبه کردند و اعمال خود را اصلاح کردند یقینا پروردگارت بعد از آن آمرزندی مهربان است این ابراهیم کان قانتا لله حنیفا و یک من ابراهیم به تنهایی امتی بود فرمانبردار خدا حنیف بود و هرگز از مشرکان نبود اجتباه شاکر آن بود که او را و او را به راه راست هدایت نعمت‌های خدا بود. خداوند او را برگزید و به راه راست هدایتش نمود. و في الدنيا حسنتا و إنه في الآخرت لمن الصالحين ما در دنیا به اونیکی که عطا کردیم و قطعا او در آخرت از صالحان است ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِتَّ بِعْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سپس به تو ای پیامبر بحی کردیم که از آیین ابراهیم که حنیف بود و از مشرکان نبود پیروی کن انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون رايت تعظیم روزشم بتنها برکسانی که در آن اختلاف کردند مقرر شد و بیگمان پروردگارت روز قیامت در آنچه اختلاف میکردند میان آنها داوری میکند. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی هی احسن. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدي با حکمت و پند نیکو مردم را به راه پروردگارت دعوت نما و با روشی که نیکوتر است با آنها بحث و مناظره کن بی تردید پروردگارت به حال کسی که از راه او گمراه شده است داناتر است و نیز او به هدایت یافتگان داناتر است و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم له خیر للصابرین و اگر خواستید مجازات کنید از چنان مجازات کنید که شما را مجازات کرده اند و اگر صبر نمایید، مسلما آن برای صابران بهتر است و اصبر و ما صبر که الا بالله ولا تحزن علیم ولا لا مما يمكرون. ای پیامبر صبر کن و صبر تو جز به توفیق خدا نیست و بر آنها اندوهگین مشو و از آنچه مكر میورزند دلتنگ مباش این الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون همانا خداوند با کسانی است که تقوا کردهاند و کسانی که نیکوکاران‌اند